در آن خدا مسئلهی که امشب در موردش میخواد صحبت بشه مسئلهی حوییت هستش حوییت ایرانی اسلامی امسایی میکنم این مسئله اهمیتش بر همگان بسیار واضحه. چون یکی از سوژه های اصلی در واقع اهل سکر و فرهنگ در کشور ما همین مسئلهی حوییت بوده در خصوص برای نسل جوان ما که در چنین دورانی دارن به سر که دورانی در واقع پوچی ها و بیخوبیتی هست سوال اول من از شما این هست که ابتدا باید برای ما خوبیت رو معنا بکنید چون من تصور میکنم که با معنی شدن این خوبیت بسیاری از مسائل حداقل روشن بشه وقتی ما صحبت از هویت می کنیمیم هویت یک فرد یا هویت یک جامعه در واقع از تاریخ از سنت ها و یا از نژاد اون فرد یا جامعه سخگی. و ما الان در دورانی به سر میبریم که هر لحظه پدیده‌های های متفاوت و گوناگونی در حال رخداد هست پدیده هایی که به طور مکرر داره در واقع این پایداری ها رو در هم میشه و معنا و ماده یک جامعه رو به طور مداوم در حال دگرگونی میکنه پس ما در عصر ابتال های عرضش ها قرار داریم ابتال عرضش ها قرار داریم خب در چنین دورانی سخن از خوبیت به عنوان یک پایداری با مان یک صبات شخصیت در یک فرد یا ثبات یک جامعه خب کمی نمفهوم به نظر میلسه آیا چطور ممکنه که در دورانی که مدام همه چیز داره باطل میشه فردی یا ای واقعا بخواد در خودش معنای ثابتی رو برای خودش پیدا بکنه و اصلا خودش رو با یک نگاه نگاهی که حداقل برای خودش بتونه معنا بکنه که این من هستم و این ما هستیم. <تصفيق> وقتی بخواد فردی اینطوری در مورد خودش صحبت بکنه، طبیعتاً باید از یک پایداری از خودش سخن بگه. ولی این دوران حداقل چنین چیزی رو به ما نشون نمیده. و خب سوای این کشور ما هم عزلهی بالاتری رو داره. ما در یک تناقض قرار داریم شاید در کشورهای دیگه حداقل به این وضوح نیست کشور ما از سوی ایرانیست و یک هویتی که برخواسته از نژاد و سنتهای ایرانیست در اون قرار گرفته و سوی اعتقاد ما است که گویی از عرب به ما رسیده اعتقاد اسلامی و ما با عنوان مسلمانان همیشه دچار این جدال ها و تناقض ها بودیم و ما همینطور میبینیم که در هر فرد و یا جامعه گروهی تا در گروه های متفاوت همیشه این جنگ ها بوده ادهی خواستن ایرانی بودن خودشون رو ثابت کنند و اون رو عرجه دونستن ادهی هم خواستن مسلمان بودن خودشون رو ثابت کنن و اون رو ادهی مسلمون بودن رو همون عرب بودن دانستن و احساس کردن که این اصلا شأن ایرانی بودن رو تخفیف داده پایین آورده و این جنگ ها به شکل های در بزرگان فکری ما هم وجود داشته و خود همین در امه مردم هم رسوخ کرده و هر کسی به اون محیطی که درش رشد کرده معمولا یک سمت قضیه رو سعی کرده که برای خودش بگیره و بر اون اساس برای خودش هویت بذاره گویی التقاط و یا اختلاط این دو هویت هویت اسلامی و هویت ایرانی بودن ناممکن شده اینها همیشه در تناقض بودن همیشه در جدال بودند. و این یکی از معذرات بزرگ کشور ماست چون همطور که ما میدونیم وقتی که صحبت از ملیت میکنیم خب این ایرانیت به عنوان نژاد خب یه ملیت اسلامیت به عنوان اعتقاد باز هم یه هویته ولی آیا در واقع میشه گفت نژاد و اعتقاد رو در واقع باید اینطوری کرد آیا میشه نژاد و اخت... اعتقاد رو واحد کرد و حداقل در کشور ما اینها به یک وحدانیتی برسن تا مردم از این تناقض و این جدال‌ها که حاصلی درستت نداشته یعنی جوانهای امروز ما این جنگ هم جنگ پدران ما بوده نفس جوان دیگه دست از این جنگ هم با هم برداشتن یعنی حتی نفس جوان این حرف این می آقا که آها ما مسرونیم یا ایرونیم اکثریت جوانه حالا دیگه اصلا به این جدالها هم میخندن پوسخن میزنن و اصلا دیگه مهم نیست که چی میگنه داریم زندگی میکنیم چه اهمیتی داره حالا عرب هستیم مسلمون حالا ایرانی هستیم چه فرقی میکنه چون در حاصلم در نگاهی که از پدران خودشون داشتن دیدن که واقعا اون کسی که مثلا اومده هویت ایرانی رو برای خودش بزرگ کرد و بر اون اساس بر به خودش ثباتی داده هیچ تفاوتی از روزمره در روزمره زندگی با اون کسی که مثلا هویت اسلامی رو اومده مثلا ملاک شخصیتی خودش قرار داده نداره در روزمره هم این هم دارن زندگی می همه بر اساس همون سانت های روزمره خودشون دارن زندگی می کنن. فقط سر بحث فکری و حالا یه سری روشن سکرانه این جدالها و این بازیهای در واقع میشه گفت کلامی اتفاق میفته که جوونهایی حالا از نگاه این جدالها در واقع خندشون گرفته یا اصلا ناامید شدند و دیگه ترجیح دادند که هیچ هویتی برای خودشون نداشته باشند برا همینم هم اگر به ایرانیتشون فش داده بشه اصلا ناراحت نمیشن اگر به دین و اعتقادشونم فش داده بشه ناراهت چون اصلا مهم نیست پس ما با یه موضعه خیلی میشه گفت ما الان در عصری داریم می میکنیم که جوانهای ما واقعا در پوچی کامت هستند و این پوچی پوچیه که براشون حتی دلنشینیه، آنچه که جای تحصف داره اینه که این پوچی پوچیه که اصلا نمیخوانم عرضشون خارج بشن یعنی احساس میکنن وقتی پدران و یا تاریخ گذشته خودش خودشون و این جدال ها رو میبینن احساس میکنن این جدال ها مسخره بوده و بهترین وضعیت همون که اینها هستن هر جا که خوب باشه هر رسمی که خوب باشه میگه خب این خوبه اینجا امریکایی خوب چشنگ داره این سنت از امریکا حالا اون یکی اروپاییه حالا این یکی مثلا از مسیحیت برای ما نمیبینیم در این دو روزمون خب خیلی از ایرانیا دارن کریسمس هم جشن میگیرن اینم خوبه چند یعنی تا سرشون دیگه هیچ چیز مهم نیست نوروزم به همون شدت برایشون جشن میگیرن همین چیز واقعا اصلا دیگه اگر انجام میشه اگر سنت ها هم انجام میشه نده امان اعتقاد و باور فقط به این که خب کاری انجام بشه تفریح تنوع اگر جوان ها دل به سنت ها میدن یا مثلا ایام سوگواری کاری انجام میدن یا نوروز رو جشن میگیرن یا کریسمس رو میدن جشن میدن نه به خاطر که واقعا باوری بر ایرانیت یا بر اسلامیت نه فقط احساس میکنن برای تنوع زندگیشون برای که بیشتر بهشون خوش بگذاره و احساس میکنن اصلا این ها این که زرن و پدرانشون چقدر ابله بودن که سر این مسئل با هم جنگ میکردن ببخشی من اینقدر صحبت طولانی کردم ازتون خواهش میکنم که این مبحث رو بیشتر توضیح بدید به نام خدا او پروازهه ای که این مبحث اهمیت ای داره نه فقط برای جامعه ما برای دولت و ملت ما که در این ده سال اخیر رو فقط گرفتار جنگ هویت بودند بلکه این یک مدلی جهانی نه فقط شامل حال جهان سومم باشه بلکه ما امروزه شاهدیم که مشکل هویت رو در این دوست ده این اخیر خود اروپایی هم حتی پیدا کردن در خود امریکا هم پیدا شده مثلا فرانسایی ها رو میبینیم که تا چدی مواجه با همچین بحرانی شدن بحران بیهویتی در دبال تواجم رسانه مثلا امریکایی آلمانی ها به نوعی دیگری ترصبات خاصی که روی زبان جدیدا در اروپا برپا شده از خود این ماجرای اتحادی اروپا یک زمینه آگاه و ناخداگاهش نجات هویت اروپایی بوده پس میبینیم که این مشکل همه است اروپایی‌ها مدتها بود مشکل هویت نداشتند اونها هم جدیدا پیدا کردند پس بایستی بدونیم که این فقط یک مسئله مربوط به ما ایرانیها یا مسلمانان هم نیست حتی در ژاپن هم این بحران پیدا شده از کل این جنگ هایی که این چند دهی اخیر برپا شده از ایلاز نبرد هویت هاست جنگ تمدان ها که میگیم در واقع همون حوییت هاست در حقیقت این مسئله تروریزم نمیدونم بنیادگرایی این واژه ها جنگ این واژه ها با هم دیگه همه این ها از ایلاز میشه گفت بحران هویت در سراسر جهانه این رو ملت ها و دولت ها باش مواجه هستن از این لحاظ تمام این ماجره ماجرای ها ماجره های حبیت در همین حد واضعه ای که این یک موزلی جهانی است یک بحران جهانی است خب از این مرفض کلی خالید بشیم برگردیم به خودمون و به جامعه خودمون بعد این سوال‌هایی که در شد که بخشیش خودش جواب بود خود این سوال‌ها بسیار مهمترند عجله برای اینکه نشون بدیم که ما ایرانی هستیم و ایرانی بودن یعنی چی؟ یا مسلمان هستیم و مسلمان بودن یعنی چی؟ و حالا اینکه آیا این اختلاط و التقاط امکان داره هستن آیا ایرانیت و اسلامیت با هم جمع شدنی هست یا نیست این ها مباحث درجه به نظر در من قبل از اون باست این سآل رو بکنیم آیا واقعا تا چدی چد برای ما ایرانی ها مسئله هویتیه که مسئله واقعی است؟ یا اینکه فقط یک مسئله سیاسی و تبدیگاتی است و یا یک حربه است در خدمت اراده به قدرت گروه ها احزاب و حکومت هاست آیا تا چدی چد این مسئله هویت، مسئله افراد و آحاد و گروه های طبیعی در جامعه ما هست و تا چدی چد تماما سیاسی است ما با یک نگاه کلی واقعا می بگیم که هر دو صورت وجود داره هم این بحران هویت هم بحران افراد و خانواده ها هست افراد و خانواده هایی که نه علاقه سیاسی دارند و نه به سیاست قدرت بستگی دارن تن زندگی عرفی خودشون رو می کنند. و به همین شدت می بینیم نظام ما و حکومت ما هم هست و در این حال استفاده از این مفاهیم هم به شدت وجود داره یعنی واقعا این مسئله از در نظر اول اینطور توده میشه که نگار این بحران هویت یک بحران کاذبه بحرانی که احزاب و گروهها ساختند برای رسیدن به قدرت و برای منکوب کردن رقیب صورت دیگرش به نظر میاد که این بحران هویت و این مسائلی که طول مس... این مسائل این میچرخه تمام رسانه ها دانشگاه ها، حوزههای ها، جوانها، حوزه های علمی، جوان ها متفکرین اهل قلب رو مشغول کرده واقعا میشه گفت شاید محور اصلی تمام مباحث سه علمی، فرهنگی و دینی بر دور این هویت داره میشه و از طرق دیگر باز میبینیم که بخشی از این باران هویت در اون جنبه صرفاً سیاسی و اقتداریش برمیگرده به وضعیت ما و انقلاب و کشور ما در وضعیت جهانی که قرار داره در مقابل با عبرقدرت ها و تهاجماتی که اونها دارن چشم تمک اونها از پدر ما دارن و بخیش هم مسلمان از خارج این بحران القاه شده برها این هم واقعیتیست همین جنبه ها هست این عناصر بسیار متنوع دخیل در این بسیار از این بحثای سرم که بگذرین واهستی به تعریفی از هویت برسیم واقعا حقیقتا هویت هرگز تعریف نشده اگر هم شده فقط گویین که تعریف نژاد بوده تعریف تاریخ بوده گاه به نظر میرسه که وقتی ما از هویت صحبت میکنیم داریم از آب و اجداد صحبت میکنیم از انوات خودمون صحبت میکنیم از مردگان صحبت میکنیم این بوگو معروف گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل بخیام اینو میگن آقا میگن ول کنین صبح‌ها رو به ما چه مربوطه پدر اون چی بوده به ما چه مربوطه که پیغمبر اون نواکه بودن امامان ما چه بودن اونها که نیستن دوران ما دوران دیگری است این مسئله مشکلی از زندگیه واقعا ما حل نمیکنه. بله مثالی که گفته شد نسل جدید واقعاً از این واسطه بیزار عملاً بیزاره. و خود بیهوییتی رو برای خودش هویت کرده این خودش این مسئله است هویت بی و مفتخر بودن به بی هوبیتی. به هر دنبیل بودن خود لاوغاری امروزه در سراسر جهان خودش یک هویت یعنی هویت نداشتن خودش یک هویت شده باری به هر طریق با قول معروف دم و قنیمت دان که آدم یک دم است این میاد تو چه بسا این اصالت الله و دیگری و بیحوییتی خودش امروزه یک مقدار در کشور خودمون هم شاهد هستیم حتی توجیهات عرفانی هم پیدا میکنه با توسط به اشعار عرفانی این استفاده و سور استفاده ها هم وجود داره فرهنگ امریکاییش مکتب تیکیتیزیه و بیخیالی این خودش هویتی شده و هویت حاکم بر نسلهای جدید واقعا همین هویت حبیت بیهویتی است ولی این واقعی که ما در مباحث گذاشتیم داشتیم هرگز در نحسهای قبل این هویت حتی مطرح نبوده تا 50 سال پیش تا صد سال پیش واقعا این مدل اصلا وجود نداشته هرگز ما این مبحث رو در یک دو قرن قبل ما نمیبینیم واقعا در واقع میشه گفت این بحث هویت و باران هویت یک پدیدهی خاصه تمدن مدرن مدرنیته و عثر صنعت و انقلابات صنعتی و تکنولوژیکی است از اات میشه. چرا اینکه این فرآورده های تکنولوژیکی که فرهنگخوااست خودشون هم پدید میاره که این فرهنگ طبیعتاً فرهنگ لاوای است فرهنگ عش برای عش لذت برای لذت خب این واضعه ای که بحران هویت مشکل بیحوییتی این است کاملا برخواسته از عصر جدید و عصر مدرنیزم که کارگاهش همان انقلابات صنعتی علمی و فنی بوده هنرها عدبیات هم پا با پدیر اومدن و سعی کردن این دوران جدید رو سبیبه که هویت جدید بکنند سینما همین دو <تصفح> پس بر برمیگردیم باز به همون مسئله ای که ما شبهای قبل داشتیم پس این موزله است مربوط به آخر و زمان مربوط به قیامت ما دیگه این مسائل رو تکرار نمیکنیم، کنیم رجوع شما رو به همون مباحث قبلیم پس این مسئله ای حوییت و بی مسئله مربوط به آخر و زمان. یامت و مفهوم برپا شدن زیرورو شدن ارزش ها زیرورو شدن ملاک ها زیرورو شدن احساسات و اندیشه ها و لذا این زیررویی قدم روی نیهلیز و پوچیست این مسئله هویت رو است که تمام فلاسفه و متفکران بزرگ قرن بیستوم در مهور مسائلشون قرار دادند مهمترین بحثی که متفکران قرن گذشته مد نظر داشتند و در از کتاب و مقالات و سخن پدید آوردند های مسئله بود اونها کرده بودند در خود انقلاب استوری ایران ما میتونیم واضح ببینیم که این انقلاب از یه از انقلاب بی بود که از بطن بحران هویت پدید آمد برای نجات از بیهویتی، برای نجات از بیغیرتی، خب باز ببین بیهوده هم نیست اگر این بحران هویت مقوله است مدرن از مدرنیزم و تکنولوژیزم برخواسته پس این از غرب برخواسته خب بنابراین این بیهویتی همون قرار است خود نبوده که مهمترین بحث تمام متفکران و مسرحینه جهان سوم در قرن گذشته مسئله غربزدگی بوده در خود کشور ما هم ما دیدیم که فقط موضوعی که غربزدگی نام داشت تبدیل به اساسی ترین ای شد که انقلاب بدید آورد. برد غیرت رو پدید آورد و انقلاب پدید آورد از این از انقلاب ما انقلاب غیرت بود غیرت انقلاب کرد غیرت در واقع یعنی واکنش در مقابل غیر و در مقابل غیر در واقع این غیرت انقلاب ما از زیر لازم انقلاب غیرت بود حالا اگر اسلامی شد به این دلیل بود که میدید که اسلام تنها وسیله ای هست تنها هربی هست تنها پناهی هست است که میشه در مقابل این تهاجم غرب و غرب زدگی ازش استفاده کرد خب برای همین بود که با اینکه های انقلابی و افراد متفکران انقلابی این کار اخیر در ایران و احزاب انقلابی اساسا احزاب چپ و غیر اسلامی بودند اینکه اینها بسیار بیشتر از احزاب اسلامی فعالیت داشتند یا داخل خارج کشور اونها نتونستند انقلاب ایجاد کنند و ضا نتونستند با انقلاب بمونند و انقلاب رو افراد و گروه ها و رهبرانی دینی بود که تونستن در دست بگیرند ببینید بحث قربزدگی رو ما میدونیم به این اموزه خب واضح شده که اصلا کسی مثل مرحوم دکتر شریعتی رو میگن فرهنگ انقلاب رویشون پدید آورد ما میدونیم که تمام مجموعه آثار و ایشون بر مدار شرح و وصف مالی بود که قربزدگی بود غرب بود تهاجه تکنولوژیزم و مدرنیزم بود که اومده بود تمام اردش های ما رو نابود کنیم تمام آثارشون بر علیه قرب و قربزدگی تکنولوژیز و تکنولوژیزم و مدرنیزم بود خب ایشون میشه یکی از مهمترین بسترهای فرهنگ انقلاب خود شخص بود ما قبل ایشون کسی مثل جلال آل احمد و دیگر متفکران خود بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هم اندیشه یشونم دقیقا به میزانی که بر این امر استوار بود در خدمت انقلاب قرار گرفت و ایشون به رهبری انقلاب رسوند. این کاملا چیز واضح بود پس انقلاب ما انقلاب نجات هویت بوده انقلاب غیرت بوده قیام برای غیرت بر علیه غیر خب از ی لحاظ هویت اینشکلی در کشور ما تعریف شده و به همون میزان که در طی این 25 سال دو مرتبه این غیرت ها خوبی کش کرده و همان میزانی که قرب از درهای دیگری بالاخره تونست وارد بشه دو مرتبه غیرت خوابش برد، هویت به فراموشی شد، بیحوییتی را به غیرتی پیدا شد و تمام ارزش و مفاهیم آرمان های انگلاب را هم تحت شاق قرار داد و پوچی و فلاکت دوشار کرده و این همین تضاب تو تناقض آفرده. حال ما میتونیم که تهاجون غرب فقط تبلیغات رسانه ها نیستن. اساس در غرب و زدگی تکنولوژیزم اینو باز بدونیم. خود تکنولوژی و کالاهای تکنولوژی که از غرب وارد میشه خودش فرهنگ غربی و غربزدگی رو پدید میاره حتی اگر اینها یه کلام هم فرهنگشون رو برای ما نفرستن اصلا نیاز به این کالا نیست ما این رو بس بدونیم این تهاجم غرب میدیم ما فکر نکنیم اصلش تکنولوژی ما این رو بس, بیم بس کنیم خب تکنولوژی رو همه میخواند این چیز تکنولوژی بعده فقط اختلاف صدیقه بوجود داره که چنون تکنولوژی عرجه مثلا دیگری وجود داره که تکنولوژی رو ما خودمون باستی تولید کنیم فقط وارف کننده نباشیم ما خودمونم پاس انگلاب تکنولوژی رو سعی کردیم خودمون هم تولید کنیم موفقیت های بسیار خوبی هم داشتیم در اینا استقلال اقتصادی فنی علمی ولی اینها ها در همینها همین اتفاقا بیشتر در خدمت بیهویتی قرار گرفت اصلا رضی اینه خب ما اگه می خواهیم بیدیم قرد بده قرد زدگی بیهویتی بعد بده, بده باستی بیکن تکنولوژی بده این مدرنیزم که محصول علوم و فنون مدرن هست بیهویتی آورده برای ما بنابراین ما باستی ساز رو ببریم سر اصل قضیه ما باقی سآل رفتن رفتنه و واقعا گمراهی به معلول ها پرداختنه ویوبیتی یعنی هم مدرنیزم مدرنیزم یعنی تکنولوژیزم در این تردیدی نیست مطلقاً تردیدی نیست ببخشید به نظر میرسی که پسرا وجود نداره با توجه به این نکته که اصولاً منبع زایش پدیده به نام هویت یا بی تکنولوژیه که ابزار مادی است آیا انسان امروز که غرق در تکنولوژی است میتونه دارای یک هویت فوق ابزاری باشه که این ابزار و تکنولوژی تمام روحش رو اشغال نکرده باشه؟ ببینید از یک طرف ما اینو میبینیم به مثلا دگاه کنید همه آدم که مثلا آدامست میجووند سقیز میجووند چقدر دارای هویت مشترکی هستند؟ یعنی دارای خلق و خو احساسات و کردارهای شبیه هم تمام کسایی که مثلا شلوار جین میپوشن تمام کسایی که مثلا از انترینت استفاده میکنند چت میکنند و جزایی دیگه در واقع از یک طرف باست گفتش که هویت تماماً گوین که منوت به تکنولوژی ابزار تولید و کالاهای های است و هیچ چیز این از این نمیتونه باشه از یک لحاظ از این واقعیت، یعنی مردم اکسنیت مردم آمه هویتشون رو اشیای بیرون پدید میاره این هم بتپرستی در حقیقت ببین مدرنیسم مود یعنی بوت این بتپرستی مدرن در گذشته خاطر از هر فرد یا قوم یک یا دوتا تا بت میپرستید آدم نیو اشیای داخل خونه رکھونید یک تلویزیون یک بوت هر شیعی یک بوت پرستیده میشه باها این چیز واضعیه. متا هر کسی ها بود داره. هزاران بود داره. و این هم بودبرستی بشه. از لحظه تعریف جامعه شناختی ما در واقع به نظر میرسه که از این دیدگاه همون فلسفه جبر تاریخی و اصالت ابزار تولید مارکس رو میبینیم که انگار واقعیت داره. ایشون معتقد بود که کل فرهنگ یعنی هویت معلول ابزار تولید شیوه تولید و شیوه مصرف و طبقه اقتصادی است اشون متقد بود از ایداز کاملا درسته منتها اشکال کاریشون رو بود که این رو گفت همینه و باعث همین باشه لذا پس ما هم بر اساس همین مسئله بایست بیایم سرنوشت بشریت رو اوض کنیم خودش ایشون اول این رو نف کرد و بعد یادش را که نف کرده بود اومد خودش تکنولوژی رو تبدیل به هدف کرد و لذا جامعه کمونیستی مد نظر خودش رو تماماً بر اصاللت تکنولوژی خلق کرد این گ دستان نسیان نسییان شده خودش اول معتقد بود که جامعه سرمایهداری انسانها رو از خود بیگانه می‌کنه و روحش رو تباه می‌کنه. ماشییننیتون همین دیگه بحث ماشینیزم در جامعه شناسی دقیقا این همین این ماشیننیزم اسم دقیقه درش تکنولوژیزم دیگه. اون موقع ماشین از مکانیک بود مکانیزم بود حالا الکترونونیزم اول الکترو میسمی این شکلی این این واقعیت اینی مردم روحشان رو به اشیاء محیط به کالاهای مادی خودشون میفروشند و بیان دیگر به میزانی که یک فردی گروهی دارای قدرت معنوی و روحانی نیست دارای هویت ذاتی و باطنی نیست اشیاء بر او وارد میشن و روحش رو تصرف, تصرف میکنند کنند و به تسخیر در میارن مثل عجل نوشیاتین دقیقا انگار قلب و روح و اندیشه او رو مالک میشند آمه مردم این, این انسانی که در خود دارای هویت ذاتی نیست او پرست میشه بنابراین آنچن که مارسکوف در واقع تفسیر جامعه شناسی پرستی بود منطقه بیان خاص خودش رو داد یعنی ما نباستید کنیم که ایشون چیزی جدید رو کرد کردن نه جدیدی ایشون بیان نو سال شما اینه که به تکنولوژی رو که کسی نمیتونه بگه نه خیر من بدون تکنولوژی میخوام زندگی کنم خب بتونن برو تو قار زندگی کن این جای حرفی نمونید ولی اگر از میتونه تو کار زندگی کنه البته ولی این حداقل اون یک راحل اجتماعی راه نیست که این راههایی رو کسانی مثل پلپل پل در کامبوج خواستن اجرا کنن و ما دیدیم که چه فاجعهایی می‌افتنن ایشون دقیقا تکنولوژی رو نابود کنه و یک اقتصادی بومی و کشاورزی پدید بیاره تا بتونه ملت خودش رو از غرب زدگی نجات بده مدل دیگریش رو ما در افغانستانم دیدیم خود طالبان میخواستن در واقع ملت رو از غرب زدگی و تکنولوژی زدگی نجات بدن و به استعمار برسونن علاوه اونها اسلام اسلام به عنوان ابزار استفاده کردن چون اسلام به عنوان ابزار استفاده شد آنچه فجایعی بیش شمار اسلام به عنوان سیاسی استفاده شد نه عنوان یک آرمانم یک مخصوص اینو ما باید بدونیم اشکال کاری اونها برای همین اتهام غربی ها این رو کردن که تمام تخریرات مال اسلام و اصلا اسلام به درد نمیخوره و اسلام که این همه تبعکاری و فاشیزم و این همه جنون رو در افغانستان پدید آورد نه استفاده از اسلام یا از هر مذهب و آرمان معنوی و هر حقی عنوان یک ابزار همیشه فاجعه آفرینیم. بل انقلاب با عنوان عبزار به عنوان ابزار تبدیل به ضد انقلاب میشه اسلام با عنوان عبزار به عنوان ابزار تبدیل به ضد اسلام میشه ادالت به عنوان ابزار و ای برای قدرت تبدیل به ضد خودش میشه این مسئله نهایت مهمه پس تخصیل ایدولوژی ها نبود نخیر استفاده ابزاری از ایدولوژی ها بود که آن جوامع رو آن انقلابات رو ضد ایدولوژیک کرد اشکال از ایدولوژی نبود این بینهایت مهمه و این رو متأسفانه هیچکس ازش صحبت نمیکنه بنابراین این بحث یس جاش اینجا نیست این نکته بسیار مهم وبس بود. بنابراین انسان امروز اگر هویت میخواد اگر میخواد روحش در تصرف تکنولوژی در نیاد در تصرف آهن و بتن و برق و الکترونیک و ماشین و نفت و غیر در نیاد پس بایستی دارای چنان روحی قدرتمند دارای چنان هویی عظیم باشه تا بتونه وجود رو همچون جوشان کبیر در قبال تهاجم تکنولوژی حفظ کنه ببینید هویت یک کلمهٔ اسلامی عربی است از هو میاد هو که خود خداست قل هو الله احد هویت پس یعنی هوگرایی وجود هوگرایی بودید یعنی خداگرایی بودید هو یعنی او زمیر قایب دیگه سوم شخص قایب پس حمیت یعنی گرایی خداگرایی درسته؟ منطقه این قیب دیگه آسمان نیست برای خود آسمان هم الان دیگه به فساد کشیده شده بقول قرآن کافران آسمان هم به فساد میکشند جب به زمین هم تباه شده رفته کره زمین خود الان میشه گفتش غیرندود داره میشه. پس راهی دوس باطن باقی نمیمونه. هوی باطنیه، به باطنیه. هویت هم یک امر باطنی است، روحی است. برای همین بس آدم با تغییر لباس نمیتونه تغییر هویت بده که این ادا میشه، این تقلید میشه، این جنون میشه. ما اون مشکل رو توی نظام خودمون داشتیم. مثلا خود قضیه حجاب. ما از این طریق خواستیم هویت ملی دینی من رو و هویت انقلابی حفظ کنیم. بله. ما دیدیم که حجاب بود ولی زیر حجاب چیز دیگری از آب درآمد. ما دیدیم که کروات نبود ها؟ پوشش های مردانه هم معجب‌تر شد ولی زیر اون فسادهای دیگری درآمد. این بمباستا نشانه این است. بنابراین باز مراقب باشیم که توش این فرمالیز نشین، هویت اگر قیدگرای است، معناگرایی است این خود این فرمالیزم خودش نعلوارونیه در خدمت بیهویتی قرار میگیره همینطور که این های فرمالیستی کرداری لباسی برای احیای هویت تبدیل شد, شد به شدیدترین نعزت ضد هویت چون هویت ضد هویت نفاق فرهنگی این تناقضات و فرهنگی که ما باهاش مواجه هستیم حاصله که این تلاش فرمالیستی بود بنابراین اگر بیهویتی که هم غرب زدگی اس هم تکنولوژی زدگی س مدرنیس یعنی چ یعن ب یعنی فرم فرمگرایی یعنی بس خود بیهویاتی. حاصل فرمالیزم و فرمپرستی بوتپرستی بشر معاثر هست اگه چنینه هر نوع فرمالیزم دیگر ما باش متوثر میشیم خانها به این فرمالیزم اروپایی میرسه چرا براینکه ماهیتش یی که اینکه ا تکنولوژیزم بیهویاتی همش فرمالیزم تکنولوژی اثلا فرمپرستی است. بنابراین ما نمیتونیم یک فرم سنتی رو در مقابل یک فرم مدرن بذاریم و احساس کنیم که این شکلی هویت خودمون نجات دادیم چنین چیزی ممکن نیست. چون که این مساله همون هم فرمالیزم، یعنی ماهیتش تکنولوژیزمه. مونتا توابل زمانیه. ما مثلا لباس‌های باز خون سال سالو پوشو بوشیم، واقعا دو طور میشیم و دو تناقض جنون و ریاکاری میشیم. این هویت نمیشه. این نقطه دیگه که برای جامعه ما در سبرت بزرگی بوده با فرمالیزم نمیشه بر علیه فرمالیزم مبارزه کرد با فرمالیزم سنتی نمیشه بر علیه فرمالیزم غربی مبارزه کرد چون اینا ذات واحدی دارند خود غربی هم که از روز ازل که اینجوری نبودن که اون هم تا پنجاست سال پیش مثل ما لباس سنتی داشتن، آداب سنتی داشتن فرهنگ و کردار و گفتاری مسیحی مس این مهم مهمه این هم توضیح واضحاته ولی متسببه همین واضحات رو این که هیچ نمی‌بینه نمیبینه که آقا رو ما عوضی گرفتیم این شکلی نمیشه هویت آفرید با فرمالیزم نمیشه هویت آفرید چون خود بیحوییتی غربی تماما خودش فرمالیزمه مانکنیزم، حالا فرق نمیکنه کنه لباس عربی باشه یا لباس هندی باشه یا لباس اروپایی باشه اینها مشکل ما را حال نمی کن به نظر میسته که آمه مردم توده ها که اساسا دارای اون معرفت قوی باطنی نیستن که خودشون را حفظ کرن در مقابل این حجوم فرمالیزم و مدرنیزم و بودپرستی های علمی فنی جدید حداقل رهبران انسان های فکر که میتونن خود ارگوهای این هویت روحانی باشن و لذا برای مردم هم اصفه حجت و امام بشن بنابراین هو اگر همون هویت همون باطن همون قیب خود خداست و خدای باطنی و غذبی نه خدای آسمانی است. چون هویت فقط انسان بگیزانی که خدا را در درون خودش کشف میکنه و به قلم و و آستانی اون نزدیک میشه در واقع به هویت نزدیک میشه به نزدیک میشه بس هویت یک منایز کاملا باطنی و غیبی برای همین کسی که هویت داشته باشه چه کلوات بزنه چه عبا و عمامه باشه تنش. چه جین بپوشه چه تیشرت بپوشه فرق چندانی نداره فرق چندانی نداره این واقعیت ما کاملا شاهد هستیم اینهایی که به زیادی نداره بنابراین بخاطر شرایطی که انسان امروز در قبول تکنولوژیزم و مدرنیزم باش مواجه هست یه توفیق اجباری و توفیق است چون هیچ را نمونده که انسان تختگاز برگرده از بیرونگرایی ظاهر پرستی و فرم پرستی به باطن که قدم روی روح معنا معنویت و خانه خدا سرو کنه به هون از دیک بشه پس یعنی چی؟ یعنی معرفت نفس پس علاج انسان امروز از بیهویتی معرفت نفسه خودشناسی ما میدونیم که بانیان این انقلاب ما تماما تمام آثارشون حتی در آن دورانی که اینقدر بران بیهوبیهدی نبود اونها پیشگویی در واقع کرده بودن پیشبینی میکردن تماما تکیت میکردن بر خودشناسی و معرفت نفس و خداگاهی مجموعه آثار شریعتی از یک لحاظ تماما خود خداورنده است و دعوت به خود آگاهی میکنه به معرفت نفس اگر شریعتیش این چیزی میکنه نشون میده که تا دیشون علوی و شیعه خالص و ناب بوده ایشون چرا؟ برای اینکه معرفت نفس دین اسلام و خاصه تشیست در هیچ مصطبی این در روی معرفت نفس و خودشناسی تکیم نشده با خود پیانبار اکرم مسلمان حقیقی زین پس احالی معرفت نفس هستند خوب. ما میبینیم که همین با خود آیی و بازگشت به خیشتن وازگشت به خیشتان خیش مهران صحبت های دکتر شریعتی تصنم مثل آل احمد ها کیشون واقعا یکی از ارکان پایه‌آورنده انقلاب ما بوده و ارزش آساییشون امروزه بیشتر شناخته میشه تا در زمان خودشون همون کتاب کوتاه که واقعا یک شاهکار مندگار بود همین کتاب به تنهایی میشه گفتش که یک دونه انقلاب رو همین یک کتاب ایشون فقط فرهنگ انقلاب رو پدید آورد همه اینا در وقت به خودشناسی و مرحبت نفس میکردن ما این رو خامده همین موضوع میدونیم حتی در وسیع نامه خود منیانگزار انقلاب یکی از نکات اساسی اینه در وسیع نامشون که میگه من به همه مردمان میگه نصیحت میکنم ها که به خودشناسی بفرداسند تا به خود کفایی برسند تا از اصارت شرق رو از نجات بیدا کنند تأک پس اونها خوب می دونستن که قضیه چیه اونها فرمالیست نبودند هرگز فرمالیست نبودند ما اصول رو فراموش کردیم اساس رو فراموش کردیم ما فراموش کردیم که چی چیزی موجب انقلاب شد چون فراموش کردیم لذا درست در دورانی که همه چیز برای تحقق آرمال انقلاب بیزن از زمانی آماده هست کلی انقلاب و آرزش ها و اصول انقلاب کاملا داره به فراموششسی برده میشه و وقتی نزنظرت های ضد انقلابی تو کشور مبرید مده همه اکثر مردم و حتی روشنفان ما و برخ برخییت تا خیلی از روحانیونی که یک زمان انقلابی بودن، ض انقلاب شدن و ارزش های اولی انقلاب رو میگن اینهاتی که دماده شده دیگه به درد نمیخورن این علت اینه که ما فراموش کردیم س چه چی چیزی که باعث انقلاب شد ما برای چه انقلاب کرد بنابراین بثی گفتش که هووبیت راه معرفت نفس. راه است به زبان قرآنی راه ذکره یا راه بیاد آوردن خب ببینید پس جنگ ما با غرب یا با آمریکا در حقیقت جنگ ما با تکنولوژی و مدرنیزم غربه در این تعدید نیست ما این رو میدونیم یا نمیدونیم و چون این جنگ جنگیست باطل چونکه ما زده تکنولوژی نیستیم که ما اتبالا بیشتر از غرب امروز هرسی تکنولوژی رو داریم که واضحه برای همینه جنگ ما با غرب از این دیدگاه جنگیست باطل ولی غرب اگه به ما حمزه کرد مسئله دفاعونها داستان است. نه این جنگ فرنگی ما جنگ ما فرهنگی انقلاب ما انقلاب فرهنگ بوده انقلاب انقلاب فرهنگی بوده فرنگی در این انقلاب این دو قرن در جهان انقلاب اسلامی ایران بوده تماما ذات انقلاب ما فرنگی بوده مطلقا جایگاه طبقاتی و اقتصادی نداشته برای همین بود تمام مارکسیست ها در تاریخ انقلاب ما دیوونه شدند و همهشون گمراه شدن و شدن. نتونستن بفهمند. بنابراین ما بایدسته بتونیم که جنگ ما با تکنولوژیزم جنگ استبله‌هانه ما رو تفاره به و جنون میکنه چرا؟ مگه ما میتونیم بگیم همه محصولات غربی خوبه فقط خود غرب بده خود غرب چیه که بده؟ ما با خاک اروپا و آمریکا داریم؟ یا مثلا با جنرال امریکای دعوا داریم؟ یا مثلا با آقای بوش دعوا داریم؟ نه خیر؟ چه چی چیزی درداری آمریکا بودن آمریکا هم به خاطر قدره تکنولوژیکیشه ببین بعد تمام داستان داستان تکنولوژی سروری آمریکا سروری تکنولوژیکی است این چیز واقعیتی و نمیتونید بگیم آقا ق همه چیزش خوبه فقط یه مقدار بد اخلاق اند قرب یا اخلاقند اگر همه چیزشون خوبه فقط مینینج بده این حرفها واقعا دیگه جای زدن نداریم پس والش راه راهدل راه باطنه چرا؟ برای اینکه راه خداست راه روحه اگر چنینه پس این راه کی به ما داده؟ چه که اصلا این راه رو به ما دادن؟ انبیا الهی بنابراین پس راه از راه دین خداست دین یعنی راه راه رسیدن از خود به خدا برای این نمیگن از خود تا خدا ها؟ یه وجه بیشتر نیست از خود تا خدا بلکه یه هم نیست. اصلا خود این خداست منتها بشه در این خود باز بشه و انسان بر خود وارد بشه امه. بر خود وارد شد. یعنی بر معرفت نفس وارد شود یعنی بر دین فطری وارد شده. بر فطرت دین اگر یه فطری یعنی اینوریست. اینوری نیست با فرمالیسم امروزه دیگه نمیشه دینداری کرد با فرمالیسم دینداری کردن نفاق و هلاکت و جنون و خودبراندازی هیچ راه دیگه‌ای هیچ حاصل دیگری ندارد. پس اگر این راه راهی دینه پس راه, راه انبیا الهی است ببینید خود غربی ها بزرگترین روانشناسان اجتماعی غرب مثل اریکسون مثل سیدنی هوک اریک فرون فروم هورنای قبلسر از همه اینها ویلیام جیمز که از پدران روانشناسی جدیده اینها هویت رو اینجوری تعریف کردند میگن هویت یعنی وضعیتی از وجود یک فرد که در هر شرایطی بتونه استقلال لویجی بی همتایی و ثبات خودش و اتکای نفس خودش داشته باشه این طریق رو می‌بینه این طریق رو در عرف ما داریم عرفای یک جهانی است این طریق سندی کاملا کاملاً عرفی و دینی به همه قبول دارن انسانی با هویت انسان انسانی با شخصیتی انسانی, شخصیت انسانی که بقول ازلی اگر کوها جابجا شونن او جا, با جا نشه اینقدر یقین داشته باشه ببین و ثبات بیهمتایی ثبات و بیهمتایی و استقلال یعنی چی یعنی مصداق سوره توحید احدیت، صمدیت ها ولم یکن له کوفمان یعنی بیتایی ها پس رسیدن به خدا همون به میزانی که ما به خدا نزدیک میشیم در خودمون این احدیت، صمدیت و بیتایی و اتکا به نفس و استقلال به دست میاریم ببین آزادی استقلال در واقع یعنی همون هویت آزادی نه آزادی انتخاب در هر شرایطی زیربار هیچ جبر بیرونی نبودن جبر اقتصادی جبر حکومتی جبر استبدادی جبر, جبر استعماری جبر تبعیقات جبر تکنولوژیکی ها مثلا اصل این جبر نباشه یعنی آزادی یعنی این آزادی روح ها آه؟ یعنی احلیات سمدیت یعنی بنیازی یعنی استقلال بی تایی. پس این راه خداست به میزانی خدا رو در خود میشناسیم خدای خود خدای آسمان هویت نمیاره اگه می آورد تا این چند هزار سال آورده بود. خدای امروزه انسان به خدای خودی احتیاج داره خدایی که در ذات خودش مییابه امروزه دین فطری فقط هویته دین آموزشی، القایی، وراثتی تاریخی نمیتونه هویت از اگر بود انقلاب ما میباستی جواب میداد دین وراثتی دین تاریخی نمیتونه هویت بشه نمیتونه دین باشه دورانش به سر اومده چرا بر اینکه دوران قیامت و آخراز زمانه دینی که فقط بر فرم‌های شرعی بخواد عمل کنه نمیتونه دین بشه همونطور که در آخرالزمان و در قیامت طبق احادیث المیثار دورانی هست که دین پوست میندازه تا به مغزش برسه پوست میندازه یعنی شریعت‌ها رو میندازه فرم‌ها رو میندازه شریعت رو نابود میکنه شریعت رو عمیقتر قلبیتر و خونی و پوست میکنه نه می‌کنه نابود می‌کنه شریعت رو خودیتر می‌کنه از چه راهی؟ از راه معرفت است راه معرفت نفس راه دینه راه شناخت انبیاس از طریق انبیا ما میتونیم خدا رو بشناسیم برای اونها بودن که خدا رو با معرفی گردن و فطرت دینی رو در ما زنده کرد